Bye. <makes noise> نون با اینکه دستت خاادیه ولی دست و دل بازی یعنی همهش میخواای برخرجی کنی یه دورایی برات می بینم دورایی؟ آره اونجر ببین پول چی؟ پول می بینی؟ پول پول میخواد چیکار؟ میخواام ماشین بخرم ماشین ها طلب خود همه رو بزنم مقصا این فرانو نمیدونی چه کلاسی برا من میذاره اینا هاش موش آتیش خانی. را آتیش بله براموز... باز کلاس بودی فاز برداشتی زود بگو مهمون دارم پشت باشه علا میان بچه ها ببخش که علا اون یکی قرصم هم گمونم همیز بود باشه شما برو ای پیداش نکردیم یا پیداش میکنم پس کوشی نکنه پشت این وانتا داری خربوزه جمع میکنی ای یه لحظه فکر کردم تو این ماشین بشک این دفعه رو درست فکر کردی عزیزم That's رایت right. مالکیه؟ کیه ماله کی باشه عزیزم That's mine. به سرم نظر تو خودو بگو مالکیه ارسلام برای روز تولدم سپرایزم کرد یعنی اینو ارسلام برات خریده عزیزم چشمات مالی میفهمی که خواب نیستی ایت ریل سفتا سدش یازده ثانیه است سیستم تهویه کامل هوا سیستم پخش کامل چه عالی الان تهران دو ساعت دیگه با سد کیلومتر شمال دریا الان اینجا لتر شیره خوش با حالت اصلا باورم نمیشه ارسل و مراتین خریده باشه دو تا دو, دو چقدر با هم فرق دارن برعکس اردالان هیچی نداره این حابیل و قابیل میمونن مبارکت باشه عزیزم گذشت اون زمان که بخوام با کیف و کفش و الانگو اینجو و اینجور چیز و سرمون رو شیره دمش گرم هرکی گفته نیو کارت نیو لف جانم کیمی خونه؟ قرار شد بیم، با... اگه بریم یه جا رو ببینیم سه ها دیگه زود بیا دیگه چیزی شده؟ کارت دارم خانم خونه سلام آده سلام بسرم، خسته نمیش بربانه شما، سلام علیکم سلام چی شده؟ ارسلان برای پوری ماشین خریده ماشین خریده؟ ارسلان خولچه رفته ماشین خریده؟ بابا اون گورش کجا بود که کفن داشته باشه الان سه ماه دیویز هزار تومن به من بدهکار حه امروز رو فردم میکنه بعد رفته ماشین خریده؟ من که بابر نمی کنم. سر کارتون گذاشته بیرون رو نگاه کن ماشین رو میبینی ماشین مشکیه آره؟ ها. این چه کاری رفته کرده اصلا اگه من تو قرار نبود هم دیگه بریم یه جایی رو ببینیم آه واسه آرشگاه خب پاش بریم دیگه اگه نمیریم من لباسه ما عوض کنم چرا میرم چه باشه ان شاءالله کجا؟ یه جا برای آرشکا به این پیشنهاد دادن، بدیم میریم ببینیم. ببینیم. این بالا میرسونمتون. نه محمود خیلی دوره، به زحمت میافتید. ابرقو هم که باشه میرسونمتون. این بالا. تاروف نمی‌کنه. اتفاقا از ابرقو هم دورتره. چهش کال داره. حالا چهار با این ماشین بیرون نرفتی. این تاروف نکنیم. زندگی بدون ماشین مف گرونه والا. خب ماشین داشتن بد نیست. اما به شرط این که با درآمد آدم تناسب داشته باشه با وضع زندگیش جور باشه و الا توی یه هچلی میفته که باز مجبوره بشینه تو خونه و خونه دل بخوره ولی اگه با فقر و بی پولی به اصازجی کشم در نهید همه آرزهاشو با خوش ببری تو گور میشه آدم حسابینم نه؟ برادر من تو بازم اشتباه فهم میدی منظور منم آدم بره پول در بیاره، توانایشو داشته باشه، خرج کنه، خونه بخره، ماشین بخره، سفر خارجی بره، نازش استش که بدش میاد. اما حرف من یه چیز دیگه است. من میگم که با درآمد کم ریخت و پاش اونچنان نیست، تهشام میرسه به زندان یا باید بری کار خلاف بکنی. تموم شده راه. وقتو به خاطر خریدن این ماشین اونم دست دوم داری منو وضع میکنی من از زندان میترسونی؟ صلوات بفرستین. اومدیم خوش باشیم ما، دعوا نکنیم. عزیزم این بحث منافاتی با خوشیمون نداره. داریم صحبت میکنی. آخرش معلوم میشه حق با کیه، کی ناحق میگه. باشه ازیش، حق با شماست. ولش کن بیخیال. اصلا حق باشه. ا، کماوردی جا زدی؟ ببین، هر طور دوست داری فکر کن. واسه که تو این بونگاها تنت خورده به تنه زمین خارا و کلاه بردارا هوایی شدی. شما که تو اون اداره به کمالات رسیدی، آقای با کمالات. بگو اینا مایه یه 1 که از این اداره میگیری، اگه رو جمع کنی یک قرونشم خرج نکنی. تا آخر عمرت میتونی یه خونه 67 متری بخری؟ میتونی یه مغازه دو در دو تو بازار بخری؟ والا به خدا اگه بتونی اون وقت با کمال سادگی اینا عدالت میدونی نه مثل این که تو کلم فکرت مسموم شده خدا به دادت برسه چی میخوایی بشی تو آخرش؟ من هیچی نمیشم بایستالام اینم تو چی میشی؟ بس کنی تو رو خدا تیزی اینجاست؟ به نظر من اصلا پیاده هم نشد بریم چه دخترم؟ هیچی حوصله ندارم حق داری تو خونه که ونگ ونگه یه بچه توش نباشه خونه نیست که تو هم اگه مثل پران سرت به یه بچه گم بود فکره یعنی که تو سرت نمی رفتاد اردنان نمیتونه یه زندگی ساده رو اداره کنه حال پس فرده بچه هم بیاد دیگه هیچی هران کس که دندان دهد نان دهد بچه با خودش برکت میاره روزی میاره عشق میاره زندگی ها تغییر میگن بهتر میشه موسیل کن عزیزم تو هم ماشین میخوای نه؟ ماشین نه آره منم ماشین میخوام خب اینو که چند بار گفتی منم گفتم چشم خب سه سال داره قول شو بید پس که توی به همونی فرصت بلاخره این فرصت کی میرسه؟ نمیدونم نمیدونی یا نمیخوای؟ خب پسرم براید دست دوام برش بگیر زن جوانه هارسو داره من ماشن خارجی میخوام میگن یه دیونه که یه سنگو میدازه توی چه صد تا آقلم نمیتونن درش بیارن همینه این ارسلان خلوچه رفته یه قلطی کرده به ایمار چجوری انداخته تو هچلا حتی شوخیت گرفته من از کجا دارم باستو ماشین میخورم یه چیزی بگو که بگنجه ارسلان چطوری تونسته؟ در هر دوتون یکیه دیگه داخل مادرم من شما دیگه چرا؟ بابا با این تورم گرونی که همه هشتشون گرای نوعیشونه این خانم تو این هیروبیر حوث ماشینش کرده تو اصلا فرض که من همین الان میخوام برم وستو ماشین بخرم کو پولش بابا یه چیزی بگو که بگونجه اینقدر نره رو اصابه من من تصمه خودم گرفتم من دیگه نمیتونم با این وضع دارم بدم بله آخه ما فک نمی‌کردیم واسه این تصمیم واقعا ناد یکم دیر شده این فکر رو باید قبل از ازدواج می‌کردی. اتفاقا فکرش کرده بودم فقط اشتباه از آب در اومد. حالا میخوام جبران کنم. بهتر بود خودت به ولی و قبل ازدواجت فکر میکردی و زیرش نمیزدی و عمل میکردی کی بود میگفت هرچی چی بخوای برات فراهم می‌کنم. نمی‌ذارم هیچ آرزویی تو دلت بمونه. حالا که خریط از کول گذش خوب حسابم گذاش کیف دستم. من دارم وازه حرفم آگه زندگی برای تو خوبه برای من عذابه ای بابا خجالت بکشین ببین چی سرید که آهم آهامپاره چه چی چیزایی داریم به هم میگینا داخل مادن من اینشون حیا اینجا نشسته ببین چی داره میگه عین ها شده من یه دونه دو چرخم نمیتونم بخرم بعد برام واسه ماشین بخرم هر تو واضح زدی پس بازم گوش کن من نمیتونم هیچ کار واسه تو بکنم چیم نمیتونم واسه تو بخرم حالا هر کاری که به نفعته برو همون کارو انجام بده. شک نکن همین کارو رو میکنم تو سه سالی هیچ کاری نکردی الان دارم بهتون میگم این زندگی از نظر من تمومه اه. به خدا اگه یک کلمه دیگه هر کدومتون حرف بزنین یه بلای سر خودم میارم شایدا چیما قضا تو امروز از قول دیر کردن یادم رفیادم اردالان جان آقای عزیزی با اجازتون ما داریم بیریم نهار افتخار بدیم مهمونه منیم تعارف هم نمی کنم <تصفيق> شما لوتز وریق شیربانی ولی کلن امروز اصلا اشتغا نداره ترس ما در خدمتون هستیم شیده جان پاشو یه دقیقه اینجا خدا تعارف نمی کنم ما سیره سیرم آقا پاشو بی رئیس هستیم آقا پاشو بیم خ نی... خ سلطه. البته به دست همسر شما سا. ظاهر سازه آهرو باته بفرم بفرم بسم الله این شیروانیه نه زن داره نه بچه مجرده و داره کار میکنه سلطان وی و تخته هر روز میره رو رستوران خب معلومه منم جای بودم هر روز مینفتم رستوران میگم این روزا که اداره است. شبه هم که میره کار میکنه و از که میخوابه خوف باش با این خوف صبح رو میخوا هم توب نیشاره کره هم شد نیشاره کره این ده خلا بونه نوشت چیه باش که تو گیافه ای دمانگی به زن دعوت شده نه پا نه دعوت چیه ده نه من گرداش بزرگتر کرم بداخلی درد پیلن حتی بیشتر پاری کردم نه میگه درد چیه من بگو از خدا که پنهونیست از شما چه پنهون برادر ما رفته حسد زنش یه میکان خریده زن ما هم پاشی کرده توی کفش که اللو و اید بریم یه جایی بالاتر بسه من خونه بخریم تو ملک میره هر روز بالا برای بسه اگه و ازت عزیزی جان تو که دیگه از حوضای من باخبری بعضم که خوب نیست بماند خیبت خیبتم هست من یه وامی برای تو آماده کرده ولی من قدران نیست آقا یه که گویشتم واسه عمل پرتز پایین مادرم آها، تو یه کار کن خالی به من نه نگو که زر خالی به من تو زندگی ایرادی نداره که خالی به من زندگی کن سلام علیکم سلام حال شما خوبه؟ مرسی بفرمی خونه؟ بله خونه خیلی تو خواهیش بکنیم سلام زندگی داشته چطوری میشین یال خدا خدایی من خوبی؟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 ولی خدایش به جون پوران همش درده دل برادرانه بود هیچ قصد و غرزی هم توش نبود در حساب منو ببخش. من معذران به این برادر من من از تو ناراحت نیستم و از حرفات هم ناراحت نیستم چون دیگه ضده ضربه شنان به حرفات ولی از ماشین خریدن بیمورده چرا؟ خیلی داگونم خیلی ای بابا باز برگشتیم سر جای اولمون همون آش همون کاسه آخه برادر من فرض کنم نادون. همین ماشین خریدن بی وقت تو باعث شد که زن من غر کن ت از شما دردم درنه زن من غرکنه بر خوونه مادرش حالا مادر خودمون رو کی جمع کنه؟ حداقل حد شما ها تا برگشتن پونه یه زحمتی بکشیم میان یه کمکی به من بکن یاخ که نمیتونم مادر رو جمع بکنم آقدر دلا اگه پونه برنگشت اون وقت باید چیکار کرد من همین بچه داری برای خودم کافیه مادر داری دیگه پیشکشتون ختون هم میدونید مادر توی ما هم مییونه خوبی نداره. از اولشم با ازدواج من و ارسلان مخالف بود از همون موقع کینه کرده منم اگه بخوام اون نمیخواد چه بگم حالا؟ زنم کجا رفته؟ چون من برگ داداش پول این ماشین کجا آوردی؟ نمیتونم بگم یعنی الان نمیتونم بگم خلاف کردی؟ آه، اینی که میتونی بگی؟ آره یا نه؟ آره آره یعنی این که میتونم بگم؟ مردونه نه؟ البته فرایم نمی دیگه تو تمام تو داری میکنی که زندگی ما رو بدی به باد حالا بگو ببینم، این پونه حرف حسابش چی اصلا؟ نمیدونم والا، یه ساعت با ایش صحبت کردم که از خر شیطون بیاد پایین اما بازم توی همون رسطورانی که قبل از ازدواج زباش باش قرار میذاشتم با هم قرار گذاشتم آخه اونجا چرا؟ میگم بخوام با صحبت کنم اما نجله خونوادت سلام سلام برمشه قطع زود میگذره نه؟ انگار همین دیروز بود اومدیم اینجا نشستیم با هم حرف زدیم از خودمون گفتیم از خونواده همون گفتیم و از محدودیت گفتیم بعد هم تصمیم بیرفتیم با همه از کنم یادش به خیر سه سال گذشت ببینی اینجا هیچ تغییر تحقیر نکرده میز و سندلیا همونه در و دیوار همونه ولی تنها چیزی که تغییر کرده فقط من توی خب تغییر لازمه اگه تغییر نباشه زندگی خسته کننده و یک نواخت میشه آره خب پیشنمادت چیه؟ اگه روز اولی که اینجا آمدیم و نشستیم و حرف زدیم یادت نرفته باشه من تو برای یه زندگی خوب و با هم شروع کردیم من به خاطر تو از همه چیم گذشتم اما تو چی؟ تو به خاطر من چیکار کردی؟ خب چیکار باید کار واید میکردم که نکردم؟ من که همه تلاش تلاشم کردم کتایی کردم آخه وضعیت اقتصادی رو که داریم می‌بینی، این مشکل من که نیست مشکل همه است آره تو همین اوزای بعد خیلی ها به پول ثروت رسیدن اما تلاش کردن آره اونا به پول ثروت رسیدن ولی چجوری رسیدن با دزدی کردن با مال مردم خوردن با حق رو این برونبر کردن بابا اونام اونا که پولدار شدن از جا دارن حمایت میشن من با حقوق کارمندی دارم زندگی میکنم زندگی میموده سی سال اینجوری بزرگ شده پدرم هم کارمن بوده خودم هم کارمن بودم من کسی رو دارم حمایتم کنه من اینطور فکر نمی کنم اینا همش بهونه است تا از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنید تا ضعف و ناتوانی تو پشتش پنهون کنی من ضعیفم آره تو راست میگی اصلا من ضعیفم اصلا من من خب تو درست میگی. ولی تو بعد هیب کوبی تو سر من باز شروع شد من یه چیزی میگم فوری قاطی میکنی من دارم قاطی میکنم من دارم حرف میزنم با تو ببین اردالا من و تو به همدیگه علاقه من همدیگر دوست داریم من تو برای یه هدف مشترک با همدیگه شروع کردیم درسته؟ درسته خب موفق نبودی. من میگم بیا از این به بعد هر کاری که میکنیم برای این باشه که به یه هدف مشترک برسیم نفع هر دوتامون قبوله؟ Kopar, دیگه منم دارم همینو میگم samaan اگه حرفت حرفه از این asemat, kaikki teemme, saat parempi olla, باشه که hyvä. No, harvet hän on miettinyt, että minä sanon, että se همینو میگم خب جدی دارم بابا محلی. به خدا دارم منم جدی میگم بابا حرف حساب که دیگه جواب نداره داری درست میگی میگی ما هم دیگه درکوی خب بابا حرف منم همینه توی این سه سال هم به خدا من دارم عدن میگم جان ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم نمیتونیم با هم زندگی کنیم چون به جای اینکه که همراه هم باشیم مانع همین پس این همه صفصت بافی و مقدمه چینی واسه این بود که اینو بگی بر خوشبختی عشق لازمه ولی واقعا کافی نیست اون وقت اگه زورم میرسید و واسه ماشین میخریدم هم لازم بود هم کافی نه بحث ماشین نیست چرا اتفاقا بحث تو ماشینه تو ماشین میخواد نه من نمیتونم دیگه تونه تو با حقوق کامندی زنگی کنم من نمیتونم بشم پرستار مادرت تو قرار نبود که پرستار مادر من باشی مادر من الان مریضه باید پروتز پا براش من... بذارم اصلا هر جو که راحتی هر جو که دلت میخواد بکن من نمیتونم اتفاقا من خوب میفهمم که تو داری چی میگی این عشق و علاق و اینا همش کشکه تو از اول نمیخواستی با من باشی تو اصلا خوشبختی رو با من نمی دیدی فکر کردی من احمقم فکر کردی من نمیفهمم فکر کردی وقتی که من میام تو خونه خونه شلوغه خونه به هم ریخته نمیفهمم اصلا تو چرا نمیخواستی ما بچه دار بشیم وقتی من میام تو خونه تو داری پچ پچ پچ با دوستات حرف میزنی تو خونه من شلوغه تو اینو نمیخواد من اینو میفهمم تو نمیخوای که با من زندگی کنی ببین اتفاقا منم آدمی نیستم که وبال باشم و چیزی رو بخوام به تو تحمیل کنم ببین. منم نمیخوام چیزی رو به تو تحمیل کنم. پیشنهادت چیه؟ من طلاق میخوام. طلاق میخوای؟ تو از من طلاق میخوای؟ آره. طلاقت میدم. آره طلاقت میدم. اوکی؟ okay. هر وقت رو بگی. طول. من که از اول با این بسرت مخالف بودم میدونستم این دختر داره خودش رو حروم میکنه اون تا هیچ کس من گوش نکرد ولی حالام دیر نشده زرار رو از هر جا جلوشو بگیری منفعته خوشبختانه بچه دار که نشدن بر هم هست خانم چرا این ورود جادوهایی داری عرف میزنی؟ تو بچه که مشکلی نانا حل کنی داری نمک رو سخت بشه میباشی؟ ماما چی دارید میگید به نظر من مشکل پونه و اردلان اصلا مشکلی نیست شما دارید زیادی جدیش میگیری. میگیرین حق دیگه تو زندگی خوب داری یه پات ایران و یه پات اروپا خوش زده زیر دلت خواهر من خوش خوشزیده تو رو زده همه چیز زندگی که پول نیست مهم صفا و صمیمیته که خوشبختانه تو داری ولی قدرشو نمیدونی اگه میخوای عاقلانه فکر کنی میبینی کار درست تو کردی و کار اشتباهو من ولی حالا فکر می‌کنی برنده منم و بازنده تو به خدا من که سر در دخترم من نمیدونم چی واقه به تو بگم این شوهرت پاکه نجیب انسانه آخه تو چی میخوای تو باید این شوهرتو بذاری رو سرت حلوا حلوا بکنی واق ببینم فیلت واسه هندوستان کرده آره سلام اگه هنوز کسی حرفت هست یه تاریخ مشخص کنیم بیا تکلیفمون رو روشن کنیم ما مو یادم اومد این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم بابا به خودم مسئله کوچیکی نیست که تو انقدر زود در موردش تصمیم میگیری. باشه حرف بزنیم کجا بیام؟ به نظر من بیا جلوی خونه وادم تا. آره بهتره. شب بیا اونجا. باشه، پس من شب میام خونه. خداحافظ. خداحافظ. چی رو میخوای ثابت کنی؟ مادر جون، پوران جون، آقر سلام. من طلاق میخوام. اردلان راضی نیست. مقصر منم. حالا حلّه؟ چی چی رو حله شماها چتون شده چی میگی پونه جون ما هم خوب بودین که دیوونه شدی نه عزیزم تازه من عاقل شده اشته به خدا حداقل بگیم چی شده تو رو خدا حرف از جدایی طلاق نزنید ازدواج ما از اول اشتباه بود ما دنیاهامون با هم فرق میکنه احترام همون داریم ولی حرف همون نمیفهمیم اردلان هم با من موافقه ما حرفمون رو زدیم صحبت رو کردیم به رسیدیم مگه نه نه خیر من اصلاً موافق نیستم من این زندگی رو دوست دارم اه دوست داری؟ بله دوست دارم ولی من ندارم انقدر تو رو دخترم دارم یه شب به این نتیجه رسیدی نه مادرجون من سه ساله دارم تو این زندگی زرچی میکشم هیچ نمیگم. میگم ولی من با طلاق مخالفم تو یه اشتباهی کردی دلیل نمیشه که منم همون اشتباه رو تکرار کنم زدی زیر حرفت نبودی. الان هم نیستم ولی خب ناچارم تو ماشین میخوای خب برات میخورم هر کار دیگه هم که بخوای برات میکنم اما طلاقت نمیدم آره بذارم اگه میتونی براش بخرم شهر رو بخوام همین کارم که بکنم مردم چشم چطوری مینه گفتی پول یه دو هم نداری جورش میکنم آخه یه حرف می‌زنم که بتونی انجامش بدی داداش چرا قله الکی می‌دی من اگه حرفی میزنم خوشواییدم بله انجامش می‌دی ولی با فکر کردی برنده واسه افتخاری که در خدمت شما باشم منم سعی می‌کنم که ماشینم شما معرفی کنم برنده شما باشه این ماشینی که عرض کردم خدمتتون فول آپشنه گرمکن داره مانیتور بزرگ داره سنسور پارک داره سیستم صوتیش 8 اسپیکر داره در واقع چرم دستی داره من در خدمتتون هستم حالا حق انتخاب با شماست ببخشید من هم ماشین اولیه‌رو پسندیدم سفیده حق انتخاب با شماست انتخابت عالی بود هم قیمتش مناسب بود هم کلاس داره بعد دلونم زیاد فشار نمیاد یه ای چند فن انتظارین لحظه داشتن حالا که قرارتون یک دو روز ماشین تحلیلن بشه اصلا ارم و قرار ندارن هیجان حالا من یه چیزی رو بهت نگفتم خبر نداری چی؟ دلیل تو رو از من خواستگاری کرد دلیل؟ آره دیگه همون نمو عشقاهیه تا بهش گفتم جاریمی و شوهر داری بیچاره دمخ شد چه دمخ شدنی هر غریبه قریبه که میریم اغلب همینطوریه اردانان هم که فوری حالش گرفته میشه هرچند سعی میکنی چیزی نگی و به اون خودشم نیاره تا هم چیزی نگیه اوکی. این زن و هر دوشون کم دارن آ. حالا هردالان یه چیزی گفته قایلر رو خط کنه. این پونه ساده باورش شده ای ای من ها کشم کشم فرداشته ماشین ماشین صد میلیونی بگیره کاش بودیم این جل ساب نماشکا چجوری از خجلت آب شدن ببینیم که بیا ولا كن اخر شرطی بیا پایین و لگ اینجا تو باز با هم قرار کنم ما بعد دیگه داریم او او او خدا رحم کنه خودشه میلم نیاز در هانی <تصفح> خریدنش با بوردنش خوش بر سری خرش خوشا دیش آره بکرم اشتبا کشتم میکی و درست صندوق ها بزن، صندوق صبح خانمان بفرمایی در خودتون بزیرای کنم آن وای نهست دیگه بابا جمعه رفت بزیرایی کنم شام حاضره بپرم بریم دفترم، بریم مهمورشون <تصفيق> <وزنطق> دو جتون همه‌تونه، دو جتون همه‌تونه بفرمی خودتون برم مغزم، بباشی خب، همه‌کی بفرمیشان بفرمی پایش من بخودتون فضلی کنم، بفرمی بفرمی بفرمی البته یادتون باشه، اینه دخترم درست کرده بفرمان شهر یه 16 ماه هم بسته باشه با 20صد پیش پرداخت و ماهی مای دو میلیون تو هم بده ب نخورده همش ما یک میلیون چند حقوق میگیره اینجا بفهم تو بعد تشر افت خدا باش رو کنه دا این اوضایی که تا میگی بعد مجزه بشه اگه مجزه هم نشه مقصرش دو تایم دیگه مقصر خودشونن باید مسئولیت کارشون رو بههده بگیرم به که میزنی اعتقاد داری؟ تو مسئولیت کارتو به احترم میگیری؟ گرفتی؟ نه بقو مامان جا بقو بازی نکن با غذات اصلا فکرشو نکرده بودم توی این چنوزه یه نفرم واسه کپ و رنگ و مو و ناخون و هزار دو کفت و, و دیگه نایمده حال میخوای چیکار کنی؟ چیکار میتونم بکنم اما یه کاری کرد دیگه؟ تو فنا سواری تو بکن منم دندم نرربی کاری بکنم پولشو رو کنم میگم. ببخشید آ این پیشنهاد رو راحلی بود که خودت دادی. بله خودم دادم ولی شما هم گفتین که من کمکت می تو اقزش نگفتی من که کف دستم ب نکرده بودم از کجا میدونستم هیچکی نمیاد و ساراش بعدم روزی که تو گفتی ماشیو می خرم. من من اینکه کمکی بهت کرده باشم گفتم اوکی رو من میدم. حالا فلدی نشده. ای خیلی نارهتی می تو رسولان یه جل مادر و پوران و ارسلان جل هرکی که تو دلت میخواد در مده حرف بزنیم من سر و قالم باش سادم اما تو نه همراه خوبی نبودی من؟ بله جنابالی تو کم آوردی هر موقع که کمیاری اسم اون رستوران کفتی رو میکشی وسط باشه آقا الان باشه یادت باشه چی فکر میکردیم چی شد اردالان جان چون اومد حالا چیکار می‌کنی؟ درست میشه مادر جان. شما خودتون ناراحت نکن. طلاهای منو بفروش. من طلا میخوام چیکار؟ واسه همین روزانه نگرش داشته بودم دیگه. اون طلا قوت قلب شماست مادر، اونا رو واسه چی باید بفروشم؟ قوت قلب من آرامشه بچه‌مه. بفروشش. شما نگران نباش، جورش میکنم، مادر جان جورش میکنم حسنجون ببخشین گدره مجده؟ مجده؟ یه دقیقی بود کار داشته اونجا راستش یه دست اندازه های پام هم درست شده که از پسش بر نمیام بکنم که از اینجا میگیرم گیرم گوش نیست بچه ها گفتن که تو یه کار دووا میداری خواستم ببینم اگه میتونی یه راهنمایی منو بکن خیلی گیر کردم اهل کار هستی. آره بابا هر کاری باشه هر قدم سخت باشه انجام میدم از سیایی که دیگه بالاتر رنگی نیست از خارج اون دستت درد نکن دوتا آبدارشو گذاشتی دیگه دستت درد نکنه خسته هم نباش ببین دارن هر چی فکر کردم چه کاریاست مناسبه؟ اقللا جای قدر نندا بدون ما از بقیه جداست ذاتا آدم اداری نیست نمیدونیم ما به اداره تعمیل شدیم یا اداره ما آقا بدون سرد نشی یادم اش قربون افتادم از بچه های همین خطه آدم خوبیه بنده خود واسه دیسک کمرش دکتر بهش گفته روز 6 ساعت بیشتر نمیتونه کار کنه گرفتار درگیر زن و بچه‌شه خرجش زیاده دیدم از اینا تو مشکلات تو داری گفتم که Dessa tuntuu, että me tuossa on hän, joka on vaikeaa, mutta se on vaikeaa. Eli että se on, että se on. Mutta on vaikeaa. Mutta se on vaikeaa. Mutta se on vaikeaa. Mutta on vaikeaa. Mutta se on on vaikeaa. on چی صوبه؟ یعنی کجا میره تا این مقایصاب؟ آقا تو که میدونستی پول عشق ماشینه. منسه چمبار اردرانو زور کرده خونشو بفروشه ماشین بخره. آقا واس چی الکی گفتی من ماشینو به کادو دادم؟ اگه صاحبش از کانادا برگرده مشو تحویل بگیرم وقت چی داری بهش بگم؟ تو دیگه کاسه دکتر از آش نشو. من یه حرفی واسه فان زدم. اونا نباید جدی میگرفتنش. باید ماشینو ببرم بذارم تو پارکینگ صاحبش. اگر هم از همون پرسیلن چی میگم میگیم آقا نداشتیم اقصادوشو بدیم فروختیمش دیگه اینجوری شاید همه چی برگره به حال اولیش بیداری؟ ماره خیلی وقته داره زنگ بخوره خیلی وقته کی اومدی؟ چرا سجاد نخوابیدون؟ فکرم سجاده دو بود، گفتم دیگه بیدارت نکنم من تا سه منتظرت بودم اه؟ خب، انقدر خسته بودم، دیگه ساعت نگاه نکردم، سه بود صبح چه بلدت مخواد؟ تا چنده؟ بابا من دیرم شده من چیزی نمخورم مانوزای من، چکرم شده؟ آمان. پیشونی چی شده؟ دعوا کردی؟ با کی؟ نه بابا. اوکی، آقا با فهم بده دعوا چی شده؟ چی بابا این راننده ناشی اتو اتوبوس زد و, و ترمز سرام خورد به این میله. ببین من نمی‌دونم رئیس بازی در اومد. خوب گوشش تو باکن. حواستو جمع کن. دو بار مدیر کل معد اتاقمو شما خواب بودی. واقعاً؟ با بله هر کاری کردیم بیدار نشدی. من میخوام انجام بدم. حالا اشتباه انجام بدیم این درصد خب انجام من کاراتون رو انجام دادم. بگن آبروت رفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته. هر به قدر همت خود خانه ساخته. یه ذره حواستو جمع دارم همین کارو میکنم. بیافت شما اجازه بده من. هم... چته؟ چی تابلوه؟ بیا چی شده؟, شده؟ چی شده؟ مصرف کار به من. چی دارین میگید بابا؟ شده. ها؟ چی؟ نمیخوای بگی؟ باید آره درست بهمیدی هسامم پورده به هم ریختم کم آفوردم قول میدی به کسی نگی بهت بگیم ها؟ دیگونم که شده آخی اینه انصافه از صبح تا بوغ سگ کار کنیم شبان تا صبح مسافر جا کنی، جا تا چه میخوایی اینقدر زلیو خار باشی؟ عشق عشق کیمیاگری داره هرگز نمیرد که دلش زنده شد به عشق اشن که ایشون مشو ور داره تو خیابون وول بخوره شما با اون لکنتی دا صبح چون بکنی این اشک طلاق میکرد الو پوران سلام کجای خونه ای پس ماشینت کو پورا. ببین پونه جون ماشین هیچ وقت واسه آدم سرمایه نمیشه یه دوز میتونه ظرف پنج دقیقه اون ماشین رو بدوزده اون وقت تمام زحماتی که حسی خریدن اون ماشین گشیدی به فنا میده ما اشتباه کردیم آینده و ترقی آدم ها فقط تو خریدن زمین خونه است که تمنی میشه منم به ارسلام گفتم ماشینمونو بفروشیم خب خب شما شانس آوردیم ماشینتون دست دوبامه زیاد از قیمتش نمیافته ولی اگه بخوام بفروشمش خیلی ضرر میکنم خوشینم صفره اگه نفروشمشم بدتر میدونی پورا همش فکر میکنم در حق خیلی ظلم شده بیچاره تا دیدخش همه کار میکنه بهت گفته شبا چی کار میکنه توی شرکت کار میکنه چی کار میکنه انبورداری کجای پونه جون کاش انبارداری کنه شوهرت داره مسافرکشی میکنه چی تو از کجا میدونی یشب بر سلام بعد از کارش رفته دنبالش دید آقا داره مسافرکشی میکنه اینجایی؟ صحبت تغییر کردیم اومدم توضیح بیشتری بدم به تغییری که ازش خبر بدوریم چه تغییری؟ گفتنش آسون نیست ولی باید بگم ما ماشین نخریدیم از گادای تولداد و سوپرایزم خبری نبود ماشین امانت دوستای ارسلام موتو آجانس به جون مامانم نمی دونستم کار به اینجا می رسی حضرت سیگار رو تو خاموش کن حد درقل. اینجا ماشینه مستقیم بود دوم مسافر هم میخدی؟ منی چی نیستم یه احمقم یه احمق ساده دل مثل اینکه خیلی دلت پره خاک بر سر آن خاک ساری کنن که دل به ها بنده. با ایشان حرمت و وفا نیست این گفتی الان شعر بود؟ حال خودته؟ نه یه جورای کردم با وصف حالم جور در بیاد فضولی نماشه اما دردت چیه؟ یه کار کرده جون کرده آجر و آجر گذاشتم خیش و خشت تا یه خونه بسازم برم توش زندگی کنم نفس بگیرم ولی لاکردار زنم خودم و تو خونه خودم راه نمیده درد دیگه نه خود یه غصه هست یه شاید خودتون کوتاهی کردین. ها خونه مال خودتونه خونه رو به اسم میسدم دوستش داشتم عاشقش بودم قریت کردم ها شوشت دراز میشه خریت خب زنت برای چی این کاری کرد؟ ببین ما مردا هرچقدر ساده ایم همه کارامون اللا وقتکی و همینجوریه زنا با سیاستن، با دوز و کلک همه چیشون با سیاسته از هر انگشتشون فریب و دوز و کلک میریزه فریب دوز کلک فریب دوز کلک فریب دوز کلک سیاست داشتن زن درست هم اگه شما هم یکم دور بودی الان بازت این نبود آدم عاشق فکر و عق نداره عشق با فکر و عق جور نیست وقتی عاشق که میشی مغزت فسور نمیسو سنه. عاشق شدم که این برا سرم یعنی عاشقی کسی شدی که خونتو بالا کشیده؟ این موقعی شب آوارت کرده؟ مستقیم بودیم حالا میخوایی چیکار کنی؟ آدم وقتی میخواد یه کاری رو بکنه تهی کاره رو میبینه برایش مشخص روشنه میدونه میخواد چیکار بکنه ولی وقتی که عاشق میشی یعنی سراب عشق یعنی سراب انقدر با خودش تو رو میکشونه میکشونه میکشونه می تا غرقت میکنه همیشه همین جوریه از اول تاریخ همین بوده تا آخرش هم همین من نه اولیش هم نه آخریش طلاق میخواد منم نمیتونم مجبورش منم به زور با من زندگی کنه سیگارتو بکشیش خبت نیم بره دیگه نمیذارم شبا کار کنه سلام جرام سرای. سلام, سلام. خدا روشو که سالمی که نشکسته اصلا خودتو ناراحت تکنی زرزیان مالی پدش سرت خدا بهت هم کرده سلام سلام بله خدا به ایشون رحم کرده خانم ولی ایشون به من ظلم کرده این ماشین خرج یه خانواده می رو میده اون بیچاره ها چی کار کنن خانم محترم این ماشین من یک ماه هم نیست از کمپانی گرفتم یه دونه خال روش نبود الان به جز خرجی که داره 80 میلیون تومان از قیمت ماشین من افتاده من که کوتابیا نیستم یا خسارتو میده یا میره زندان تشریفیو علیت بیرون. با صحبت کنه. اگه به توافق رسیدید که هیچ اگر نرسیدید راندف برایت بیره بازداش فردان پروندان این پسیم برای داد سلام تکا رسولی بله قربار تشریفی هریت رحنامویشون کن بیرون ما کن بفرمایید محبت بفرمایید این کی بود پیدا کردیم ما رو بیچاره کرد اما تشریف هریت دیرون ببخشی جناب سروانم حتی اگه وسیقه هم بذاریم بازم و بره زندان بنزل اقل دعملیون خرجشه ولی صحابش امون کنساس با افتادشتال بلیون نگیره خیال نمیشه حالا میخوایم با این همه خسارت چیکار کنی؟ من میگم ماشینا رو بفروشی خسارتش رو بده برفرضم که ماشین رو فروخت نهایتش میتونیم خسارت بنزل بدیم بعدش چی کار کنم؟ با این همه عقصاتش خسارات پراید چی کار کنم؟ دیگه بریدن خسته شدم از این همه بدهی از این همه بدبختی دیگه نمیتونم منو تو دنیامون خیلی معذب می‌کنه خیلی زیاد من یه آدم بی پولم اما تو یه آدم پول از و تجمعیدی من قانم اما تو نیستی من خوشبختی رو تو چیزایی که دارم بینم، اما تو تو چیزایی که نداری من از زندگیم راضیم اما تو راضی نیستی راست میگفتی گفتیم ازدواج ما از همون اولش هم اشتباه من هر کاری که برای نگه داشتن این زندگی و ماخرشم به حرف تو رسیدم راه سعادت ما برای آینده از هم جدا خیلی دوست داشتم الانم دارم اما فقط منم که دوست دارم عشق دوست داشتم برای خوش وقتی لازمه اما کافی نیست نه حرفای خودته یادت که نرفته نه یادم نرفت منم تو دوست دارم منم برای تو تو رضا دوست داشتی؟ اگه دوست داشتی که بیشنهاد طلاق نمی دادی؟ کده دادی؟ اگه دوست داشتی که منو مجبور نمی‌کردی با سینه گهت داشتن زیر بار یه بدهی سنگین برم که رفتم من قبول کرد باشم واجستادم تا آخرشم جنگیدم اما نشون یک کم بود تو نفر که با هم ازدواج میکنن. تو آخر عمر پشت همه نه اینکه خودشون یه کاری بکنن که پدر هم دیگر رو در بیارن این دوست داشتنه منو دوست داشتی؟ تو اصلا میدونی خودخواهی یعنی چی؟ اصلا با این واجه آشنایی ببین اردالا من با بیپولی تو مشکل نداشته و ندارم قد با بیپولمولنبت بر همیشه مشکل دارم این راهی که تو میری امیدی توش نیست تو برای تغییر زندگیمون هیچ تلاشی نمی کنی. تو اهل ریسک نیستی ولی من هستم منزد یه سوال میپرسم ما برای چی به این دنیا میانی؟ که زندگی کنی یا مردگی، ها؟ خونه رستوران با من قرار بودشته که از من طلاق بکری. درسته؟ او چی؟ عیل خود. من الان مافا هستم. از نبودنت چه دل خورم عزیز دل کنار من بمون نرو که می برم به من نفس بده کدم بده از این هفا برم ساعتا دقیق هاشب و روزای پرز دل خوره عزیز دل دلم گره و نیستی و دلم پره تو هر نفس که میکشم کشم هوای تو داره دلم سبورم و چه خالیم چه دوری و چه عاشقم هوای من زمستو هوای تو بهاری هوای من چه ابری بی قراری تو آسمون رویان تو جای ماهو داری وقتی که نیستی اینجا یه چشم راهو داری یه نفس هوای تازه یه نفس هوای دریا میدونم دلت میگی یه بیرنگی رویای نفس هوای شرجی یه نفس هوای داغه تو نباشی نفسی نیست همه یه رنگا سیاهه مادر جا به ای خدا این چیزایی که دارم میگم فقط به خاطر خودته حالا که پونه نیست چند روزی برو پیش هر سلام پوران هزت مراقبت کن اینجا رو باید تا یه ماه دیگه به خریدار جدید تحویل بدم تعهد کردم اون جایی هم که دارم میرم خیلی کوچیکه. خیلی هم راش دوره اذیت میشه برو پیش هر سلام خب اونم پسرته با من چه فرقی داره با پران نمیتون میمیرم باید من برونت برم بادن قدم درون جفت چشم من فقط راحتی تو را میخوام غلط کرد غلط کرد سا، ماما چایی تو نمیخورم اه چرا بابا؟ مگه با ما ای؟ خوانم اون داره دیگه زنم همون رفتن شما این خیالتون نیست همشه هم تقصیر شما دوتا چرا تقصیر ماست؟ فیم کنی من بچه هم نیفهمم ماما میگه تقصیر تو, تو میگه تخصیر تخصیر تا میگه تقصیر این تقصیر دوتا تو نه من هم شما بوده یه اون چی تا نمی‌دونی؟ هر سالو برادرم چطور اینو زهور می‌گی؟ کاری کوچولو دیگه با من بکنین دیگه. با بعدا، حداقل پورا هفته یه بار بیاد ببره مادر عمو. من با حرف زور که بهت نمیزنم که. داداش من چرا شلوغش میکنی آخه؟ پوری بنده خدا که حرفی نداره. مادره که باش نمی‌سازه خودت که میدونی بابا راضی کردن مادر با من. خیلی خوب، راضی کردن پورانم با من. باشه دیگه دست در نکنه باش خدا حافظ خدا حافظ. آقای شیدا اگه کمک کرد دستا من برمیاد تاروخ نکنیم خوشحال میشم کمکتون کنم دست شما در نکنه خانم خیلی ممنون راضی به زحمتتون نیستم منم حضرم اگه بتونم کاری انجام بدم زحمتی نیست وظیفه انسانیه خواهش میکنم خانم دست شما هم در نکنه خیلی ممنون راه حل که ما برای شیدا دست بالا کنیم مشکل مادرش یه طرف خزی است. چه شام نمیخواد، نهار نمیخواد، رفت نمیخواد، و رو نمیخواد، اتوشو شستشو نمیخواد. کمدم میخواد. من تو رو میخوام گروه بسو تو بایدار نمو منو برشن رو بازی میبرمت قربونت برم من بابای خالی بایدار بدم میاد نه شیطون چاری من بوده چیزی شده چی کشیده این پونه از دست مادر جون بالا حق داشت جونشو در رفت دو ساعته دارم نینی به لالاش میذارم همون بردمش قربون صدقه میرم اون بهش چیکار میکنه یه سر به من ناسزا میگه من این دفعه رفت دیگه نیستم یه فکری براش بکنید عزیزم آروم باشه سر تعامل کن این دوتا تا آشتی میکنن برمیگردن سر خونه زندگیشون اون وقت ما باید میشیم اینجا اوه کجای کاری مثل که خبر نداری امشب برای پونه خانم خواستگار اومده آن سبو بهش که ریخت فینیش خبر داریم شب برای کنه خاصی بار اومده خب اومده باشه یا من چه شالا خوشبه باشی گفتم اگه پشیمون شدی یه فکری بکنی دیر به جنبی موقع از قفص پریده شالا خوشبه باشی تو دلته میدونم که نیست حرف دلش نیست نفهم خیلی خوشم ازمین باز کردید باز کردید باز میکنم شب خودم باده نگهتم نه نباشی نه من که خیلی خوشم داد اگه پونم رضایت بده دیگه حله Bu mama diyor aynı kan. Eee tamam boy gezatin. Hoş olsun. موسیقی الان که دوتایی تهنه شدیم برنامه چیه؟ برنامه چی؟ برنامه زندگی دیگه توانم تو سن سالی نیست که باری به هر جد باشی و زندگی تو مف مف ببازی سنت که بره بالا نمیتونی انتخاب کنی نه انتخاب میشی نه به عشق میرسی نه به تفاهم و تجده فراش کنی اگه مامانت روی ویلچر بیفته چی میشه ها؟ میخوای بوهرانای رویت حلشه تجده فراش کن خیزشان نه حالشو دارم نه حسلشو هم؟ از همه مهمتر پوله که اونم ندارم با زرگول روحیم هم که میمینه دیگه داغونه داقونه موردهی برد پیدا میکنم که با پولشون اشباط کنن ماشینی مورده سوارشون سوالشون نگاه کنی همه رو نیست که فقط مسئله روحیت میمونه که این دیگه به خودت رب دار اگه میخوای زن اولت برگرده و مصیبت از اول شروع بشه نه نه نه اون اصلا اون که نه نه خودش دیگه میخواد برگرده ولکه من میخوام برگرده نه پس خودت تو قبر سونه گذشته دفت نکن پاینده فکر کن امید داشته باش امید شفا نمیده ولی درد قابل تسکیم میکنه م? اگه خودت نمیتونی من هستم نموردم که درسته رئیسه تمالی رفیقتم هستم توفک و فامیل من پر از دختر مجرد و خوشگله همین دختر خوهر زنم اگه اونم نپسندیدی باز موردهای دیگه هست نجیب، افیف، خانوم خوشگل، خانده، غرم و سبزی درست میکنم هنگوشتت هم میخوری اصلا مهم تا پولدار ولی اول باید بریم دختر خوهر زنم ببینیم میدونی خودت دیگه اون مهمتره افر شیده جان از خود پزروی چه ساعتن صرفتون ارز کنم که این یه مجلس خاستگاری نیست مجلس معرف است آقا شیدا هم همکار من هم دوست باوقارم فرشت جانم که دیگه عزیز پاس من خواستم این دوتا هم دیگه رو ببینم با هم صحبت کنم به تفاهم که رسیدم آقا شیده با خانواده حتما تشریف میارم برای خاست این بود اصلا مطلب دیگه بعد شما لست این آقا محسن محبت کردین دست شما درد نکنی ایشون فرمایدیت از همکارتونن مثل شما کارمندن دیگه برای همکار من هستن حقوقش هم قدر شماست قدر قدر حقوق نه عزیزم محسن رئیس دبیرخونه هست ایشون هم کارمندشون هستن قدعا حقوقشون یکسان نیست تو رو خدافرده جون یه وقت به خودت نگیری ها. ولی این دور زمونه زندگی کارمندی خیلی سخته بری با این چه طرز حرف زدنه آدم بهش بر میخوره ما هم زندگیمون کارمندیه ایرادش چیه یه وقت به شما جسارت نباشه ها میبخشید بچه ما که سر راه نهی بردن فریده جون هزار جور امید و آرزو داره بعدم هزار جور خواستگار داره دکتر، مهندس، دانشجو از هر طبقه ای که بگی از هر انگوشش هم یه هنر دست میواره دستم که نمونده بره برگرده با هزار تا حسرت آرزو به دلش چشم که به چشم افتاد دیدم این هرزاده رو موسیبر میدهاندش از رید باشت پس خنده میموند بر لازم بود ما باید از این مرحله میگذشتیم حالا دیگه میتونیم در مورد اون کیسی که با صحبت کردم فکر کنیم آکی واسه شب چه پس پولا چی؟ دیگه رابطه‌ات رو هدف شما از ازدواج چیه؟ هدفی ندارم یعنی فکر میکنم یه جورایی خودم هم تومه هدف یکی دیگه شدم نمیفهمم حرف دارید حالا شما چرا میخوایین ازدواج کنید؟ منم تاقه خانوادم چون اونا میخواد منم قبول کرد هلا؟ بله ظاهرن هیچ کدوم نظر جدی واسه ازدواج نداریم یه جورایی به خاطر اطرافیانه اونی که اینجا نشستیم چیکار کنیم حالا؟ شما نظر بدیم و, و... الا من هیچ مهارتی ندارم تو این, تو این شرایط نمیدونم من... من چی باید بگم اگه شما نظرتون مثبت نیست میتونیم یکی از ما دو نفر جواب منفی بدیم و قائل رو ختم کنیم یا که یعنی این که چی؟ یعنی که راه حل اول من گفتم راه حل دومم شما بکنید حتی اگر برخلاف خواستتون باشه؟ اگه راه حلتون انسانی و منطقی باشه ضرری توش نیست میشه راه حلی براش پیدا کرد؟ ولی، ولی، واقعاً مگه چاره دیگه هم هست؟ من به خاطر خانواده محدودیت‌های دارم که نه نمی‌تونم بگم شما چرا چاره دیگه ای ندارید؟ کارمو تموم نشده شهیده جان یه لحظ چهانم؟ ببخشی به من ربطی نداره زندگی شخصی خودته ولی یه سوال برام پیش اومد چهانم؟ تو به این دختره خانم ناظری بخوایی زواج کنی؟ آره حتما عزیزی بابت این کاراتت پول خواسته تو چه فرق میکنه؟ فرق میکنه دیگه حتما بهت گفته دختره ماهی داره پول لاره چند دهنه مغازه داره آره گفته؟ آره. هیچی نداره با تنابه ی عزیز دوچه ها نرو هم تو شرکت سر امیر سالار جفری این حرکت رو پیاده کردن قضیه لورف اونم جازند ولی آخی من که پول اون دختره برای من مهم نیست اصلا من بهش چشم هشی ندارم من فقط انسانیات و شخصیت اون دختره برای من مهم هر درنجا وزیفه شخصی دوستانه من بود بهت بگم خودت میتونی اشانا که خوشبخت بشی رازی نیست مامان شهری از آن هوای خوبی نداره بیکش اینقدر لچباز نبودی دختر نمیتونم کسی اون جایی تو ببینم بیکش از آن اینجا نایمده بودم بسم الله الرحمن الرحیم زوجت و موکلتی شرار خانم مبکلتی جناب جنابای اردلان آیا به من وکالت میدهی تا شما را به عقد دائمی جناب اردلان شیدا در برابر یک جلد قرآن کریم و یک دست آینه و شمدان و صد و چارده عدد سکه بهار آزادی در آورم عروس رفته گل بچینه بسم الله الرحمن الرحیم سرکار خانم شرار نازنی عروس خانم آیا به من وکالت میدهید تا شما را به عقد دائمی جناب آقای اردلان شیدا در برابر یک جلد قرآن کریم، یک دست آینه و شمدان و 114 عدد سکه بهار آزادی در بیارم آقای اردلان ببخشید یک دقیقه با آقای اردلان شیدا کار داشتم واجبه ببخشین میشه چه سرطن دو دقیقه اینجا باشن عقب جاری باشه بعد بیان خدمت تو الان برمی اردلا اردلا تو اینجا چی کار می‌کنی؟ همه یه کارات عجیب قریبه من اشتباه کردم احبا تو حالا تصمیم با توه همیشه دیر به نتیجه میرسی دیریازودش مهم نیست مهم اینه کاری بکنیم که خواسته دل هر دومون باشه با این جماعت چیکار کنم؟ چی بهشون بگم؟ چی داری میگی تو؟ من دوستت دارم من دیگه هیچ چی نمیخوام فقط خودتو میخوام فقط خودتو فکر کن. باور کن که فقط خودتون میخوا ولی واقعا دیگه دیره اگه هنوز تای دلت یه ذره دوستم داری اگه میخوای چیزی رو به هم ثابت کنی الان وقتشه این خانوم کیه؟ من زن ثابت منم زن آینده شم گذشته ها گذشته ینجی گذشته ها گذشته زنشه میخواد برگرده به زندگیش کسی یا شو ندر به آبروی خواهر وایو و بازی کنه اگه جونت سیر شده باش باش جسار یه لسی یه لسی باشه بیا باش آبروی من برده بیا من وردی کجا میبری من این همه آدم جای حرف زدن چرا تک تا خبرو روشن بده بخشش بده بخشش بخشش بس بس وایس وایس وایس آبروی منو وردی چرا داری این کارو میکنی چیکار کردم ما این همه مجلس رو به خاطر تو گرفتیم دیگه قربونت برم چیکار کردم مگه؟ چیکار نکردی؟ واقعی چه بساتیه به پاک کردی آقا برو بابا چی داری میگی تو؟ نمیخوام اصلا زن بگیرم بابا چون زنم بفتی بود برگشته دیگه نمیخوام زن بگیرم سلطانه همه چیم بای خودم Oh nein, Brutto! Oh, Brutto! از نبودنت، ندیدنت، نداشتنت چه دل خورم عزیز دل کنار من بمون نرو که می برم به من نفس بده که دم بدم از این هوا سا تا ها هاشب و روزای پرزه دل عزیز عزیزه دل دلم گرفت تو نیستی و دلم پره تو هر نفس که میکشم کشم تو داره دلم سبورم چه خالیم چه دوری چه هاشمم هوای من زمستون هوای تو بهاری هوای من چه عبری عبرک بیقراری تو آسمون رویان تو جای ماهو داری وقتی که نیستی اینجا یه چشم راه داری یه نفس هوای زازه یه نفس هوای دریا میدونم دلت میگیره توی بیرنگی رویا یه نفس هوای شرجی یه نفس هوای داغه تو نباشی نفسی نیست همه یه رنگا سیاهه پر میشم از هوای تو حالی اینجا جای تو تو گوش من صدای تو تو خاطرم رویای تو زود چقدر دیر شد خاطر تقدیر شد سهم من از این لحظه ها لحظه ی دلگیر شد یه نفس هوای تازه یه نفس هوای دریا میدونم دلت میگیره توی بیرنگی رویای نفس هوای شرجی یه نفس هوای داغه تو نباشی نفسی نیست همه یه رنگا سیاهه